داستان روزی روزگاری پیرزنی بود مهربان و ریزه میزه که در عمرش لذت مادر شدن رو نچشده بود و هر وقت که بچهای رو در آغوش مادرش میدید با حسرت نگاه میکرد و اشک میریخت یه روز صبح که در حیات خونه کنار باغچه سفره صبحونه رو پنگ کرده بود و چایی میخورد به شوهرش گفت انقدر دلم بچه میخواد که اگه همین الان در خونه باز بشه یک هدو حلوایی قل بخور رو بیاد تو بگه من بچه تو هستم تا زندم شب و روز ازش مباظبت میکنم و یه دقیقه هم ازش قافل نمیشم هنوز حرفش تموم نشده بود که در خونه باز شد و یک هدو حلوایی قشنگ و خوشنقش و نگار وارد خونه شد قیل خورد و قیل خورد و جلو اومد و جلوتر و خودش رو چسبون به زانوی پیرزن و با صدای دخترانه گفت مادر جان بچه که منتظرش بودی من هستم پیرزن انقدر خوشحال شده بود که عشق دور چشماشو گرفته بود کدوی قلقل قل زن رو بو و بوعید و گفت قدمت روی چشم من دختر قشنگم نازم عزیزم جانم فدای تو چرا اینقدر دیر اومدی سی و چند ساله که منتظرتم از اون روز به بعد قمقصه پیرزن تموم شد شاد و سرحال چپ میرفت، راست میرفت، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو برای کد و زن آماده میکرد. براش گهواره قشنگی درست کرده بود. شبها اون رو توی گهواره میزاشت و روزها گهوارش رو به آفتاب میبرد. قبل از ظهرها تشتی پر از آب میکرد. توی آب هل و گلاب میریخت و کدوی قرقل زن رو خوب میشست، ازها اون رو به باهای اطراف می برد و در میان گل و گیاه گردشش میداد. کدوی قرقل هم گاهی سر به سر پیرزن می زاشت، میخورد و میرفت پشت بوتاق قائم میشد، پیرزن همه جا رو میگشت و دل با پسش و به گریه میافتاد. و کدوی قلقل زن دلش میسوخت و از پشت بوتا بیرون می اومد و و توی بغل اون می پرید و قه قه می خندید روزها گذشت هفته ها گذشت ماهها گذشت و کدوی قلقل زن بزرگ و بزرگتر شد و روز به روز شاداب و خوش بود هر می شد پیرزن مهربان و ریزه میزه وقتی دید که دخترش بزرگ شده اون رو به شهر برد و در مدرسهای که درست در کنار قصر پادشاه بود اسمش رو نوشت و از اون به بعد کدوی قرقله زن صبحها از روستا به شهر می اومد و به مدرسه میرفت و ازها از, از همونجا غل میخورد و به خونه برمیگشت روزی از روزها پسر پادشاه که کنار پنجره قص ایستاده بود و بچه های مدرسه را نگاه میکرد چشمش افتاد به کدوی قلقل که قل میخورد و از صف بچه های مدرسه بیرون اومد و وارد باقی روبروی قص شد و کنار درخت مو مکس کرد و چند دقیقه بعد دست های زریفی از کدو در اومد و کم کم صاحب اون دستهای ظریف یعنی دختری بسیار قشنگ از کدو بیرون اومد و خوشه انگوری از درخت چید و دونه دونه خورد. دختر مثل قرص قمر بود و پنجه آفتاب. پسر پادشاه که از کنار پنجره قصر این منظره رو داشت میدید خیره شده بود و مبهوت و نمیتونست چشم از اون برداره چند دقیقه نگذشت که این دختر بسیار زیبا کوچک شد و کوچک و توی کدو رفت و غل خورد و از باغ بیرون اومد و رفت به طرف جاده که به روستا می رفت. پسر پادشاه به اتاقی رفت و در رو از تو بست و متحیر در گوشه نشست پسر پادشاه دیگه اون آدم یه ساعت پیش نبود یه دل نه صد دل عاشق اون دختر بسیار زیبا شده بود پسر پادشاه، اون شب رو تا صبح نخوابید و روز بعد با هیچ کس حرف نزد فکر اون دختر از سرش بیرون نمی رفت انقدر سب کرد تا نزدیک غروب بشه رفت به اون باغ و پشت درخت مو قائم شد چند دقیقه نکزشته بود که کدو غیررقزن وارد باخ شد و پای درخت مو مکس کرد و دست های ظریفش رو از کدو بیرون آورد. پسر پادشاه معطل نکرد و جلو دوید و انگشترش رو درآورد و با تک تک انگشت های اون امتحان کرد و فهمید که انگشترش درست به اندازه انگشت شسته اونه. اون وقت رفت و دوباره پشت درخت مو پنهان شد و محو تماشای اون دختر شد که از کدو بیرون اومد و خوشه انگوری رو از درخت چید و دانه دانه خورد و باز رفت توی کدو غل خورد و غل خورد و از باغ بیرون رفت پسر پادشاه از باغ بیرون دوید و به قصف نزدیک مادر خودش رفت و گفت مادر جان میخوام زن بگیرم مادرش یعنی ملکه کشور خیلی خوشحال شد و گفت مدت ها بود که منتظر همچین روزی بودم از فردا ندیمه هام و همه زنان دربار رو وا میدارم که برن و زیباترین و بهترین دختر کشورمون رو پیدا کنن پسر پادشاه گفت مادر جان، من هر دختری رو نمی‌پسندم. فقط دختری رو میخوام که انگشتر من به اندازه انگوشت شستش باشه. ملکه فورا یکی از ندیمه هاش رو صدا زد و انگشتر پسرش رو بهش داد و گفت که به اتفاق زنان دربار برن و در شهر و روسته اطراف بگردن و ببینن این انگشتر به اندازه انگوشت شست کدوم یکی از اون هست. ندیمه ملکه و زنان دربار از صبح روز بعد راه افتادن و رفتن به تک تک خونه دختر دمبخت داشتن و انگشتر رو با انگشت شست اون دخترها امتحان کردند. ولی هر جا که می رفتن ناامید برمیگشتن و کم کم به فکر افتادن به روستاهای های اطراف هم سری بزنند. به این خیال که شاید بعضی از بزرگان شهر با دخترانشون به اطراف مسافرت کرده باشند و این انگشتر به اندازه انگشت شسته یکی از اون دخترا باشه ولی از این رفت آمد هم نتیجه نگرفتن تا اینکه یه روز دم غروب به خونه اون پیرزن مهربان و ریزه میزه رسیدن و در خونه اون رو زدن و پرسیدن که در اون خونه دختری هست پیرزن در رو باز کرد و گفت سر به سر من بیچاره میذارید؟ من که در تمام عمرم بچهدار نشدم اما آخر عمری از روی ناچاری کدوی قرقه زنی رو به فرزندی قبول کردم ندیمه ملکه و زنان دربار که تا به حال همچین قصه عجیبی رو نشنده بودن به خنده افتادند. اما همین که چشمانشون به کدو غرقله زن افتاد که در کنار پیرزن تا دم در اومده بود ساکت شدن و با تعجب به کدو نگاه می‌کردند که وقتی دست ظریفی از کدو بیرون اومد و صدای دلنشین دختری رو شنیدند که میگفت حالا که تا اینجا اومدید انگشتر رو با انگشت منم امتحان کنید ندیمه ملکه جلو رفت و انگشتر رو در انگشت شست اون دختر کرد و فریاد زد مثل اینکه که رو از اول برای انگشت شست کدوی قرقل زن درست کرده بودن ندیمه ملکه و زنان درباری از روستا به شهر اومدن و رفتن به قصر به ملکه خبر دادن اون دختر رو پیدا کردیم و حکایت و داستان این پیرزن و کدوی قرقل زن رو برای ملکه توضیح دادن ملکه پسرش رو صدا زد و در کنار خودش نشون و داستان رو براش تعریف کرد شاهزاده گفت این همان دختریه که من میخوام و هرچه ملکه و زنان درباری اون رو نصیحت کردند فایده نداشت میگفت این همان دختریه که من میخوام قضیه رو به پادشاه خبر دادن و اون پسرش رو صدا زد و بهش نصیحت کرد و گفت من میخوام بهترین و قشنگترین دختر دنیا رو برای تو بگیرم. تو میخوای با یک کدو عروسی کنی؟ شاهزاده گفت، پدر جان، این همان دختریه که من میخوام. چاره ای نبود، پادشاه و ملکه با عروسی پسرشون و کدو قرقل زن موافقت کردن. به این شرط که عروسی کاملا مهرمانه باشه و این خبر به گوش کسی نرسه شاهزاده قبول کرد و مقدمات مراسم عقد و عروسو رو فراهم کرد و کدوی قلقلزن رو به قصد آورد پادشاه و ملکه با چشم گریان به عروس آینده خودشون نگاه که وقتی دیدن شاهزاده شمشیرش و کشید و بالای سر کدوی قلقلزن ایستاد و فریاد زد دختر زیبا از کدو بیرون بیا و چند لحظه گذشت که اون دختر بسیار زیبا که مثل قرص قمر بود و پنجه آفتاب از پوستش بیرون اومد پادشاه، ملکه و زنان درباری از تماشای اون همه تنازی و زیبایی سیر نمی پادشاه، و ملکه انقدر خوشحال شده بودن که دستور دادن چند نفر برن و اون پیرزن مهربان و ریزه رو به دربار بیارن و با حضورش هفت شب هفت و روز جشن بود و بعد از پایان مراسم پیرزن مهربان با دخترش خدافسی کرد و به روستای خودش برگشت و از اون به بعد هر ماه یک بار به قصر میومد. و چند شبی رو در کنار دخترش می و بقیه اوقاتش رو در روستا سپری میکرد. و اما در روزی از همان روزها که پیرزن از روستا به قصد دیدن دخترش به شهر میخواست بیاد بین را صدای قررش شیری رو شنید و سرش رو بلند کرد و یک شیر کوه پیکر رو در دو قدمی خودش دید که دهانش رو باز کرده بود تا اون رو درسته ببرایی پیرزن یک قدم عقب رفت و گفت تو شیر جیانی، تو شیر دررندهی، تو سلطان جنگلی، تو سلطان همه حیواناتی اما من پیرزنم، لاقر و ریزه میزه در تمام بدنم جز چند مسخال پوست و استخون چیز دیگه دیده نمیشه بزار برم به شهر پیش دخترم دو سه روزی پیش اون بمونم خوب غذا بخورم بدنم که جون گرفت ذره گوشت و چربی پیدا کرد اون وقت به درد جویده شدن زیر دندون تو میخورم موقع برگشتن مجبورم از همین را برگردم قول میدم بیشتر از سه روز پیش دخترم نمونم شیر درنده که سلطان حیوانات بود نتونست خواهش پیرزن رو قبول کنه فریادی کرد و از سر راهش کنار رفت و پیرزن به راهش ادامه داد اما هنوز چهارصد 500 قدمی نرفته بود که گرگ گروسنه راهش رو بست پیرزن با زبون چرب و نرمش تونست گرگو هم قانه کنه که سه روز منتظر بمونه تا در برگشتش بیاد و خودش رو تسلیمش کنه و از بخت بد پیرزن 400-500 قدم اون طرفتر گرفداری یک بیابونی شد که پیرزن هرچه بالای سرش رو نگامی کرد نتونست سر اون رو ببینه قول بیابانی میخواست اون رو مثل یه لقمه در دهنش بذاره و ولی پیرزن آه و ناله کرد و به هر زبونی بود اون رو قانه کرد که سه روز منتظرش بمونه. وقتی پیرزن به قصف رسید از ترس نیمه جون شده بود. اما نمیذاش که دخترش بفهمه. سه شبانه روز پیشش موند و از دیدن اون لذت می تا اینکه موقع برگشت دختر که کم کم متوجه شده بود مادرش، چیزی ازش پنهان میکنه قضیه و اتفاق رو ازش پرسید از اون اصرار و از مادر انکار تا اینکه عاقبت پیرزن تاپ نیورد و عزایا رو از اول تا آخر تعریف کرد دختر رفت توی فکر و بعد از یه ساعت به مادرش گفت من اون کدو رو هنوز نگه داشتم تو خیلی مزه هستی و توی اون کدو جا میگیری تا دم قصر باهات میام و کدو رو قل میدم توی را به هرکی که رسیدی بگو تو رو قل بده تا به روستا برسی قول بیابانی و گرگ و شیر هم با یک کدو قلقل قل قل زن کاری نداره پیرزن قبول کرد و دختر اون رو توی کدو جا داد و اون رو تا دم در قصر برد و قلش داد کدو قلقل قل قل زن قل خورد و قل خورد و رفت به طرف جاده روستا و همینطور که قل میخورد و میرفت قول بیابانی که منتظرش بود جلوش رو گرفت و گفت قدوی قل, قل, قل زن ندیدیه پیرزن و پیرزن از توی کدو گفت والا ندیدم، بلا ندیدم قلم بده، هلم بده، میخوام برم قول بیابانی کدو رو قل داد کدو رفت و رفت و رفت تا رسید به گرگ گرسته گرگ هم سوراخ پیرزن رو میگرفت و پیرزن از توی کدو گفت والا ندیدم بلا ندیدم قلم بده هلم بده میخوام برم و گرگ هم با پوزش اون رو حل داد و کدو قلقلزان قل خورد و غل خورد و قل خور تا رسید به شیر شیر سلطان حیوانات ازش سراغ پیرزن رو گرفت پیرزن از توی کدو گفت والا ندیدم بلا ندیدم قلم بده هلم بده میخوام برم و شیر سلطان حیوانات که به همه فرمان میداد و برای اولین بار بود که میشنید از زبان یک کدوی ناچیز که بهش دستور داده میشه و بی داره باش برخورد میکنه قلم بده هلم بده میخوام برم چنان از بی و جسارت این کدو ناقابل خشمین شد که رو فریادی کرد که زمین زیر پای اون لرزید و با دو تا دستش کدو رو از زمین برداشت و با تمام قوت اون رو به سخته های دوردست پرتاب کرد کدو قلقل به سنگ خورد و صد تکه شد و پیرزن مهربان و ریزمیزه از اون بیرون اومد شیر که حتی تصور چنین چیزی رو نداشت به این گمان که روح ملک الموت از میان کدو بیرون اومده و قصد داره جان اون رو بگیره با وحشت از جاش پرید و پا به فرار گذاشت و انقدر تند میدوید که چند دقیقه بعد اثری ازش پیدا نمیشد. پیرزن مهربان و ریز میزه که خیالش، از هر جهت آسوده شده بود به راه افتاد و آهسته آهسته رفت تا به روستا رسید و برای شوهر پیرش تعریف کرد که شیر سلطان حیوانات با اون همه زور و قدرت چطور ازش ترسیده و پا به فرار گذاشته و هر دوی اونها انقدر خندیدند که فک‌های بیدندونشون، به هم میخورد و صدای خنده هاشون تا خونه همسایه میرفت از داستان کدوی قلقل زن نتیجه گرفتم که اگه هر چیزی رو از خدای مهربان طلب کنی اگه خیر باشه به تو داده میشه پس فقط از خدای مهربان که این جهان هستی رو با عشق خیلی زیاد خلق کرده طلب کنیم ممنونم دوست عزیز که تا انتهای داستان افسانه های ایرانی همراه من بودیم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگرها.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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسانه صوتی